در شهرک معابد، همه معبد ها خراب شده و فرو ریخته بودند. البته دیوارهایی هم شکل خود را حفظ کرده و درختان کهانی هم با شاخه های شکسته و پوست زنده رنگ باخته باقی بودند. از معبد هنگان که می گفتند بزرگترین بنای این شهرک است هیچ اثری باقی نبود. دودی که از خاکسترها برمی به شکل عجیبی از دیوارهای های فرو ریخته می گذشت. در ارتفاع پایین چهار دست و پا از سطح رودخانه عبور می و محو می شد در سمت دیگر پل یوکاگاوا هنوز شعله های آتش بلند بود شعله های رنگ را باد می و در آن سوی رود رقصان هوا می کرد هرچند به نظر نمی به اینجا نزدیک شوند راهی که در آنجلو می میرفتیم مقابل این پل به طور کامل قطع می شود آهنهایی که هنوز شکل پل را حفظ کرده بودند در ارتفاع 45 متری از ساحل تغییر رنگ داده بودند کنار یکی از پایه و در میان علف ها اسبی لرزان ایستاده بود که از کمر تا سر گی داشت و هر لحظه به نظر می رسید خواهد افتاد خیلی نزدیک به این اسب جنازه‌ای با صورت افتاده و بالا سوخته بود ولی پایین تنه او سالم باقی مانده بود بر چکمه هایی که روی حکامای ارتشی به پا کرده بود، مهمیز چسبیده بود. مهمیز واقعا تلایی رنگ بود. اگر او نظامی بود و آن مهمیز هم تلایی، بیشک افسری ارشد بود. آیا آن نظامی به استبل دویده، بر اسبی بدون زین سوار شده و به بیرون فرار کرده بود؟ اسب مردد بود. ظاهران از سوی نظامی مورد محبت و نوازش قرار می گرفته. فکر کردم با اینکه هر آن از پادر خواهد آمد اما باز هم کنار مهمیز چکمه مانده است. خورشید در هر به غرب بی هم بر پوست سوخته او میتابید. اینکه تا چه حد درد دارد و اینکه تا کی کنار مرد چکم پوش خواهد ماند قابل حدس نبود. برای ما چاره‌ای جز گذاشتن از داخل رودخانه باقی نمانده بود. نزدیک به ساحل خشکی وجود داشت که در آن علف رویده بود اما نمی توانستیم از میان علف که چند پاره بودند راه برویم داخل آب شدیم و در جهت مخالف جریان آب راه افتادیم امیخترین بخشش تا زانو بود حوالی شهرک هیروشی آکیتا بودیم در جاهایی که آب خشکیده و زمین شنی بود آب با صدای شلب شلب از کفش ها بیرون می ریخت. آب توی کفش ها که کم شد. فکر کردم راحت تر می توانم راه بروم اما ریگی داخل کفشم رفت و پایم تا حد لنگ شدن درد گرفت پیاده روی داخل آب بیشتر شد و با صدای شلب شلب پیش آمدیم در ساحل خشک سنگی شخصی دو دستش را روی زمین گذاشته بود و آب می نوشید. من هم خواستم آبی بنوشم اما وقتی نزدیک شدم دیدم آن شخص آب نمی نوشد بلکه به صورت افتاده و در حالی که سرش را درون آب فرو برده مرده آب این رودخانه برای نوشیدن آدوده است؟ یا سوکا چیزی را گفت که من میخواستم بپرسم نمیدانم اما فکر میکنم ننوشیم بهتر باشد دوباره قدم زنان در آب پیش رفتیم دودی که از شهر میوزید رفته رفته کمتر شد دست راست شالیزار بود با زیر پا گذاشتن سخره های خورد شده از ساحل بالا رفتیم به اطراف شالیزارها رسیدیم وقتی برای رسیدن به خطوط از خیابان آزه گذشتیم اینجا و آنجا دانش و دانشجویان دختر بر زمین افتاده و مرده بودند به نظر می جدا جدا در حال فرار از محل کار بودند افرادی معمولی هم بودند مردی در آستانه پیری هم در حالی که قسمت سینه پیراهنش خیس بود در خیابان آزه به پهلو افتاده بود ظاهرا دراز کشیده از آب شالیزار نوشیده ضعف کرده چشمهایش تار شده و نفسش به کلی قطع شده بود در حالی که پاهایمان را از روی جنازه ها بلند میکردیم پیش رفتیم خیابان آاض را به چپار راست پیچیدیم تا به خیزران رسیدیم که به صورت انبوه روییده بودند خیزران ها را برای مصرف غذایی جوان اشان کاشته بودند. سرانجام وقتی به خونک های سایه برگا ها رسیدیم، بدون هیچ حرفی نشستیم. جعبه کمک‌های اولیه را کنار گذاشتم. پارچه ضد حملات هوایی را باز کردم. کفش هایم را درآوردم و به پشت دراز کشیدم. با احساس سابک شدن تنم خیلی سود خوابم با. نمیدانم چه مدت خوابیدم اما با احساس تشنگی همراه گلودرد چشمانم را باز کردم همسرم و سوکو هم آرنجشان را زیر سر گذاشته و به پهلو دراز کشیده بودند چهار دست و پا از ای که پشت همسرم بسته شده بود بطری را که حدود دو لیتر آب داشت بیرون کشیدم و نوشیدم واقعا گوارا بود آیا آب این اندازه شیرین است چنان با ولع نوشیدم که وجودم شاداب شد. حدود دو دهم ده لیتر نوشیدم. همسرم و یاسوکو هم چشمانشان را باز کردند. خورشید به سمت مقرب رفته بود. همسرم بی هیچ حرفی بطری را از من گرفت. با دو دستش آن را بالا برد. چشمایش را بست و با لذت شروع به نوشیدن کرد. حدود دو دهم ده لیتر نوشید. و آن را بی به دست یاسوک ها داد هم خاموش بطری را با دو دست بالا برد آب را جرعه جرعه نوشید وقتی بطری را برعکس می کرد درون بطری پر از هباب بود تا آب با ترس نگاه کردم که هیچ باقی نخواهد گذاشت اما بطری را با حدود دو دهم لیتر آب باقی مانده بر زمین گذاشت همسرم از بخچه پشتش به جای نهار خیار بیرون آورد و بسته نمک را باز کرد. نصف سطح پوست خیار تغییر رنگ داده و رنگ سیاهی به خود گرفته بود. پرسیدم از کجا خریدی؟ گفت: امروز صبح همسر آقای مراکامی از شهرک میداری آوردند. ظاهرا همسر آقای آقایمراکامی صبح زود سعدت خیار با ده ماهی ساردین خشک آورده بود. این برای تشکر از گوجه بود که از زادگاه برای ما فرستاده بودند و چند روز قبل. همسرم چندتای از آنها را به آقای موراکامی داده بود. امروز صبح، همسرم خیارها را درون سطل آبی کنار چشمه گذاشته بود. آنها به خاطر نور هنگام انفجار تغییر رنگ داده بودند. یک مسئله عجیب. وقتی از زمین ورزش دانشگاه به خانه برمیگشتم، کرم حشره‌ای بید های آزالیا را خورده بود. خیارها سوخته اما ها زنده ماندند. در حالی که به خیار نمک می زدم و می خوردم به این مسئله فکر کردم آیا در سطح آب سطلی که این خیارها در آن خیسانده شده بود فرایندی فیزیکی رخ نداده بود شاید حرارت و نور در سطح آب داخل سطل انعکاس یافته شدیدتر شده و با باعث تغییر رنگ خیارها شده بود وقتی داشتم پشه بند را در آب چشم غرق می کردم، به استخر که نگاه کردم بر جوانه های تابستانی آزالیای بیرون آمده از سطح آب کرمها میلولیدند و با جدیت جوانه های نورس را میخوردند وقتی شاخه را تکان دادم آنها داخل پیله خود رفتند بعد از جمع کردن آجرها دوباره که نگاه کردم باز هم با جدیت در حال خوردن بودند جوانههای نورس تغییر رنگ نداده و پیلهها هم نسوخته بودند با کنار هم قرار دادن اینها فکر کردم آیا نور و حرارت در برخورد با فلز باعث تغییرات شیمیایی نمیشوند؟ شاید هم به زمان انفجار و نور بمب کرم حشره پروانه و گیاه آزالیا در سایه خانه یا چیزی بودند که مانع نور شده بود. به نظر میرسید برنج های شالیزارها هم نور را دریافت کرده بودند و احتمالا تا فردا رنگشان سیاه میشد. در کانال، پای خیزران ها را شستم با آن گونه راست و ماهیچه گردنم را پاک کردم و بعد حوله را چند بار شستم و چلاندم آن را شستم چلاندم شستم چلاندم و چندین بار این کار بیمعنا را تکرار کردم فکر کردم در حال حاضر تنها کاری که می توانم با خیال راحت انجام دهم همین چلاندن حوله است گونه چپم میس درون اون کانال، ماهی های کوچک آب شیرین دسته درست کرده بودند. در اطراف آب راکت، راشکتوله ها به صورت انبوه رویده بود. نزدیک بود بگویم همینجا سایه امن برای ماندن است. از اعماغ بوته های خیزران، دودی جریان پیدا کرد. دنبال منشه آن رفتم و از لای خیزران ها نگاه کردم. گروهی از آوارگان، از شاخ و برگ خیزران ها کلبه ای ساخته و در حال پخت و پز بودند. پخت و پز می و مقدمات سراوردن شب را در آنجا تدارک می دیدند. گوشایم را تیز کردم و به حرف ها گوش دادم. با توجه به گفته در خانه های امتداد بزرگ را همه پشت پنجری ها را بسته بودند و از ورود آوارگان جلوگیری می کردند. زنی از آوارگان به خاربار فروشی مقابل ایستگاه میتکی از خطوط کابه داخل شده و در پستوی مغازه مرده بود. صاحب مغازه وقتی میخواسته جنازه او را بیرون ببرد. متوجه شده کیمونو مرده بهترین کیمونو تابستانی دخترش است. با ناراحتی زیاد کیمونو را از او درآورده اما متوجه شده که جنازه نزیر پوش دارد نه کیمونو. در حقیقت او اوریان، از سوختن فرار کرده و تا آنجا آمده بود اما چون زنی جوان بوده پیش از آب و غذا دنبال چیزی برای پوشاندن خود گشته آیا مانند بمب امروز صبح را در جاهای غیر از هیروشیما هم انداخته بودند نیروی دریایی و نیروی زمینی جوان چه کار می کنند؟ مجبور به جنگ داخلی نشویم خوب است آهسته از درون بوته های خیزران برگشتم و با گفتن برویم سریع آماده شدم. انگوشتای پایم درد میکرد با گفتن برویم بار دیگر آنها را به عجله واداشتم. همسران و یاسوکو هیچ جوابی ندادند با اینکه به نظر میرسید خسته هستند چون محکم گفتم حرکت میکنیم با اکراه بلند و آماده شدند انگشت پایم درد میکرد آنقدر درد میکرد که میخواستم نعره بزنم آن دو هم درد درد میگفتند فکر کردم من شانزده تا هفده کیلومتری راه رفته بودم. همسرم حدود نه کیلومتر و یا حدود هشت کیلومتر. در حال حرکت به رنج برشته میخوردیم. دستم را داخل بخچه همسرم کردم. یکی برداشتم و در حال راه رفتن جویدم. بعد که فرایند قند سازی انجام و شیرین شد، از آب و خیار هم خوشمزه تر بود. به نظر می رسد جویدن در حال راه رفتن خیلی خوب باشد. این که مسافران در زمانهای دور به عنوان قود برنج برشته همراه خود داشتند کاری بسیار عاقلانه بوده وقتی تمامش میکردم باز دستم را داخل بخچه میکردم و یکی دیگر به دهانم میگذاشتم در ظاهر با اینکه غذای بسیار ساده و ناچیز به نظر میرسید اما در دلم از هم های همسرم ممنون بودم که این غذا را فرستاده بودند در بزرگراه آوارگان به ندرت قدم میزدند همانطور که میان خیزران ها شنیده بودم خانه های در امتداد بزرگ را همهی درهای ورودی و پنجره را بسته بودند خانه حیاتدار در را بسته و توی خانههایی هم پشت در بسته حیات بسته های حسیری نیم سوخته گذاشته بودند هرچه هم پیش میرفتیم میدیدیم باز خانه های در امتداد بزرگ را بسته هستند خلاف باد گرم داخل شهر بادی خنک میوزید و در برنج های شالیزار موج میانداخت. پدران مقدس کلیسای کاتالی که واقع در قسمت شمالی ایستگاه یاماموتو برانکاردی به دست گرفته و با سرعتی مانند خدای ایداتن داخل شهر میرفتند. پدر مقدس سال هم بینشان بود که من همیشه حین رفتم به محل کارم داخل ترانوای خط کابه می دیدمش. او خیلی زود از جمعیت پدران مقدس برانکارد به دست عقب افتاد و نفسش گرفت از رو به رو آمد و در حالی که از کنارم رد میشد، با دقت نگاهم کرد گفتم خسته نباشید سرانجام به ایستگاه موتور رسیدیم از اینجا تراموا حرکت می کرد داخل ترانوا کاملا پر بود هر طور بود با زور داخل شدیم و توانستیم روی پله های ورودی بایستیم نمی توانستم بدنم را تکان دهم و باری را که نزدیک دماغم بود به تدریج با شانه فشار میدادم. باری که زنی حدودا سی ساله با چهریف اقلاد زیبا در پارچه سفید پیچیده بود و بر داشت با این همه به نظر نمی رسید اسباب باشد. با دست آرام آن را لمس کردم حس لمس گوشت انسان بمنده است به نظر می رسید شخص داخل پارچه است. که چارهای نبوده جز اینکه این گونه او را به پشت بگیرند در میان چنین ازدهام جمعیتی حتما خفه میشد واقعا ترسناک بود مرا ببخشید خانم بچهتان است با صدایی بسیار آهسته به زن گفتم با صدایی بسیار مرددی گفت بله مرده وجودم تکانی خورد بله ببخشید که فشار آوردم، نه، در چنین شلوغی عادی است. زن بار پشتش را با شانه تکان داد و وقتی گمان می کردم دارد به پایین نگاه می کند، با حمله تشن نجواری شروع به گریه کرد. در حالی که هق هقه می گریست گفت، زمان انفجار بند نن و پاره شد، بچه به دیوار کوبیده شد و مبل. وقتی خانه آتش گرفت، او را در ملافه پیچیدم و فرار کردم. میخواهم خواهم به خانه پدریم در ایماری بروم و او را در قبرستان آنجا دفن کنم. گریهش که تمام شد، از حرف زدن هم ایستاد. من هم استحال حرف زدن نداشتم. بالای خطوط ترانواز زاغکی میچرخید صدای زنجره شنیده میشد. در برکه نیلوفری کنار بزرگ را، اسفرودهای بیدم، با سر و صدا در حال شنا کردن بودند. اگر مواقع عادی بود، چون این منظری بسیار نادر و لذت بخش بود. وقتی صدای حرکت ترانوا شنیده شد، افرادی که سوار نشده بودند، سر و صدای زیادی به راه انداختند. ترانوا ناگهان حرکت کرد و ایستاد. باز حرکت کرد و ایستاد. از جایی کسی فریاد زد، چی شد؟ بالاخره حرکت می کند یا نمی کند؟ هزاره گرام. اکنون فساد راه آهن دولتی به آخرین حد خود رسیده است آنها تمام تلاششان هم لجناس بازار سیاه است مسافران از داخل تراموا صدایی شنیده شد انگار میخواست متنی نمایشی را از حفظ بخواند این بار ترامبا با نظم حرکت کرد و چون صدای تق آن بسیار شدید بود متن نمایشش هم همینجا تمام شد